نام خداوند جان و خرد با سلام و سپاس از شما هم شما که مرا یاری دادید شما که نخستین روایت مرا از شاهنامه شنیدید شما که با مهر فراوانتان پای رفتن مرا توان بخشیدید و راه رفتن مرا هموار کردید شما ای زنان، مردان و جوانان ایرانی ای همیه کسانی که چهره شما را ندیدم و با این حال هزاران سال است که شما را میشناسم سپاسگزار شما هستم و به روایت شاهنامه ادامه خواهم داد هموطن شما سعید قائم مقامی در روایت نخوست از فردوسی گفتم از حماسه سرای بزرگ توز از جهانبینی او از عشق او به خداوند و خرد و ایران از سرگذشت شاهنامه گفتم آنگاه از پادشاهی کیومرس و مرگ سیامک و پادشاهی خوشنگ و تحمورس سخن رفت و سپس جمشید را روایت کردم حوادث سیصد سال دوران پادشاهی پرشکوه او کوشش های او برای عظمت ایران و شگفتی های روزگار و کارهایش و اینک به روایت من از پایان کار او گوش سپاری از پادشاهی جمشید چهارمین پادشاه باستانی و نیم افثانه ای ایران گذشته بود جمشید و ایران در اوج عظمت و اقتدار بودند که ناگهان احریمن قرور و خودخواهی از دروازه کاخ و دریچه قلب و عقل شاه ایران گام درون نهاد جمشید ادعای خداوندگاری کرد و تیر روزی و پریشانی ایران آغاز شد. آری، طوفان مصیبت از راه میرسید تنها در مدت کوتاه بیست سال یک سرداران و بزرگان و موبدان ایرانی از اطراف پادشاه پراکنده شدند و ترس و حراس قلب پادشاه را لبریز کرد جمشید خود به زودی دریافت که مهر و فروغ و فر زدی از او دور شده است و پریشانی وجودش را انباشته کرد اما پشیمانی چه سود آنگاه که خشم خداوند و خشم مردم و ملت برانگیخته شده است و شگفتا چه راز شگفتانگیزی در کار است که هرگاه پراکندگی و تفرقه و نفاق و گناه گریبانگیر ملت خام می شود بدون تردید باید انتظار بیگانه و بیگانگانی را کشید که با خود خشم خداوند را به همراه می آورند و شلاق تنبیه در دست دارند و چه قمنگیز است که ملت ایران به کرات شاهده این تجربه دهشتناک بوده است و دریقا که ملتها به ندرت از گذشته عبرت گرفتند آری منی کرد آن شاهی از دانشناس، زیزدان بپیچید و شد ناسپاس پس سپاه تیرگی راهی مرزهای ثبات و قرور و شرف و حیثیتی و سوارشون منظر و سیاه و تیر قلبی پیشا پیششان از به خشونت و تجاوز میران نام این سوار زهاک بود حاک. نامی که عربها را زهاک تلفظ میکنند و در شاهنامه نیز چنین آمده است لقبش بیور اسب بود بیور در زبان پهلوی و دری یعنی ده هزار بیور اسب یعنی دارندهٔ ده هزار اسب پدرش امیری با سخاوت و خدا ترس و گشاده دست بود نامش مرداس گلهداری بزرگ که بر سرزمین هایی در دشت های عربستان فرمان میران یکی مرد بودن آن روزگار زد دشت سواران نیزه گذار گرانمایه هم شاه و هم نیک مرد زه ترس جهاندار با باد سرد که مرداس نام گرانمایه بود به داد و دهش برترین پایه بود پسر بود مران پاک دین را یکی کش از مهر بهره نبود جهانجویی جهانجوی را نام زهاک بود دلیر و سبکسار و ناباک بود همان بیورس بش همی خواندند چنین نام بر پهلوی راندند کجا بیور از پهلوانی شمار و در زبان دری ده هزار از اسبان تازی به ذرین ستام و بود بیور که بردند نام این زخاک فریب شیطان را می‌خورد. شیطان به او نزدیک می شود و او را ترقیب و تشویق می کند که خون پدرش مرداس را بریزد و خود بر تخت سلطنت پدر به چینه. آیا به راستی در جهان شیطانی وجود دارد که بر انسانها ظاهر می شود و انها را تشویق به ارتکاب گناه می کند؟ و یا بهتر آن است که بپذیریم در درون هر انسانی نیروی زشت و متجاوز و سرکشی است که پیوسته ما را وسوسه می کند که به تباهی و تاریکی و گناه و کجروی گرایش پیدا کنیم؟ و وای بر انسانی که تسلیم گرگ درون خود و یا شیطان درون خود می شود. آری در سرگاهی شیطان به سراغ زهاک می رود کنان بود کبلیس روزی پگاه بیامد به یکی نیک خواه دل مهتر از راه نیکی ببود جوان گوش گفتار او را بود همانا خوش گفتار او نبود از زشت کردار او بدوداد گوش و دل و جان پاک براکند بر تارک خیش خاک تو دانست کو دل بداد برفسانهش گشت نحمار شاد فراوان سخن گفت زیبا و نبز جوان را زدانش تویی بود منز همین گفت دارم سخن ها بسی آن را نداند جز از من کسی جوان گفت برگوی و چندین مپای بیا ما را تو این نیک را بدو گفت پیمانت خواهم نخوست پسان یه سخن برگوش هایم درست جوان ساده دل بود فرمانش کرد چنان کوب فرمود سوگند خرد که راز تو با کس نگویم زبند زتو بشنوم هرچه گویی سخن بدو گفت جست و کسی در سرای چرا باید نام ورکت خدای چه باید پدر چون پسر چون تو بود؟ یکی پندت از من بباید چون بود؟ زمانه بدین خاجی سال خرد همی دیر ماند تو در نورد؟ بگیریم سر مایه در گاهوی تو راضی بدن در جهان جاهوی بر این گفته من چوداری وفا جهان را تو باشی یکی پادشاه. و بشنید زحاکو اندیشه کرد زخون پدر شد دلش پرز درد ببلیس گفت این سزاوار نیست دگر گو که این از در کار نیست دو گفت اگر بگذرید این سخن به تا میز سوکند و پیمان من بماند بگردند سوکند و بند شدی ها رو ماند پدر ترجمه سر مرد تازی به دام آورید چنان شد که فرمان او برگزید بپرسید كه این چاره با من بگوی چه روی است این را بهانه مجوری بدو گفت من چاره سازم تو را به خورشید سر برفرازم تو را تو در کار خاموش می باش و بس نباید مرا یاری اس هیچ کس چنان چون بباید بسازم تمام تو تیغ سخن بر مگش از نیام چارا درندر سرای یکی بوستان بود بستلگوشان گران ماگی شبگیر برخواستی ز بحر پرستش بیاراستی سروتن بشستین نهفته به باغ پرستنده با او نبردی چراق بران رأی واژونه دیو نجند یکی ژرف چاکی بره بر بر بکند پس ابلیس واجونه این چاه به پوشید و بسورد را سر تازیان پیر سرنام جوی شب آمد سوی باغ بنهاد رو چا آمد به آن جرف چاه یک نگون شد سر بخت شاه به چاهنده افتاد و بشکست پست آن نیک دل شاه یزدان پرست چنان بد کنش شوخ فرزند اوی نه از ره شرم پیوند او به خون پدرگشت هم داستان زدانه آشنی دستم داستان که فرزند بد گر نرشید به خونه پدر هم نباشد بریم پسر پورها ها کرد رسم پدر تو بیگان خانو مخانش بسر بسرم فرو که بیداد بدین چاره بگرفت گاه پدر به سر بر نهاد افسر تازیان بر ایشان ببخشود سوردوزیان چون ابلیس پیوسته دیدان سخن یکی پند دیگر نو افگه هند بون بدو گفت چون سوی من تافتی سگیتی همه کام دل یافتی اگر همچنین نیز پیمان کنی نپی چیز و فرمان کنی جهان سر به سر پادشاهی تو راست داد و مردم و مرغ ماهی تو راست ساز دیگر گرفت دگرگونه چاره گزیده شگفت ز خاک به جای پدر بر تخت شاهی نشسته است شیطان در جستجوی راه نزدیکی بیشتر به اوست و این بار به صورت خالیگری آشپزی به او نزدیک می شود در آن روزگاران قضای مردم بیشتر از گیاهان و رستنی ها فراهم می شده است اما شیطان پیوسته برای زهاک از گوشت حیوانات قضا می سازد تا گرگ درون او را به خوندیختن تر سازد جوانی برا راست از خیشتن، سخنگوی و بینادل و پاکتن همیدون به زهاک بنهاد روی نبودش جز از آفرین گفته بود گفت اگر شاه را درخورم یکی نامور پاک خالیگرم چوبشنی زحاک بنباختش ز بحر خورش جایه ساختش کلید خورش خانه پادشاه بدو داد دستور فرمان روا فراوان نبودن زمان پرورش که کمتر بود از کشتنی ها خورش جز از رستنی ها نخوردند چیز زهرچ از زمین سر براورد نیست پس اخیمن بدکنش رای کرد به دل کشتن جانور جای کرد زهرگونه از مرغ و از چهار پای خورش کرد و آورد یک یک به جای به خونش بپرورد برسان سانشی. بدان تا کند پادشاه را دلیر سخن هرچه چه فرمان کند به فرمان او دل گروگان کند بخورد و بر او آفرین که سخت مزه یافت از خوردنش نیک بخت جوز حات آورد و خرد شگفت آمدش زان خوشی با به بدو گفت بنگر که تا آرزوی چه خواهی بخواه از من اینک خوب خورشگر به دو گفت ای همین چه بسی شاد و فرمان روا مرا دل سراسر بر از بینر توست همه توشی جانم از چه توست یکی حاجت هستم به نزدیک شاه و گرچه مرا نیست این پایگاه که فرمان دهد شاه تا چطف اوی ببوسم به بر او چشم روی چون بشتید گفتار او نهانی ندانست بازار او به تو گفت دادم من این کام تو بلندی بگیرد مگر نام تو بفرمود تا دیف چون جفت اوی همی ای داد بر کتف اوی چو بوسید شد در زمان ناپدید کسن در جهان این شگفتی ندید دو مار سیاه از دو کتفش برست تمی گشت و از هر سوی چار جست سرانجام ببرید هر دو ز کتف سزدگر بمانی از این در شگفت. شاخ درختان دمار سیاه برآمد دیگر باره از شاه پزشکان فرزان گرد آمدند همه یک به یک داستان خواهدن زهرگون نیرنگ ها ساختن برای درد را چاره نشنام به پزشکی پس بریز تفت به فرسانگی نزد زهاک رفت به تو گفت چین بودنی کار بود به من تا چمانم نباید درود خورش ساز و آرام ده بخرد نشاید جز این چاری نیز کرد به جز مغز مردم مدهشان خورش مگر خود بمیرن زین پرورش. برش دوای تو جز مغز آدم نیست؟ بر این درد و درمان به باید گریست به روزی دو کس بایدت کشت زود پس از مغز سرشان به باید نبود دیگر نراتیو در این جستجوی چه جستو چه دیدن در این گفتگوی مگر تا یکی چاره سازد نهان که پردخت ماند ز مردم جهان <تص mieszkaan> زمان با شگفتی هایی که در کاخ زهات روی می دهد، ایران در مصیبت غرق است هر جو مرج و آشو پهن ایران را فرا گرفته است هر سوی سرداری دای پادشاهی و تخت و تاج ایران را دارد آفتاب عظمت و سربلندی و معنویت ایران را ابرهای تیره نفاق و پریشانی یک سر است از آن پس برآمد آمد زیران خروج پدید آمد از هر سوی جنگ و جوش سیاه گشت رخشند روز سپید گسستند پیوند از جمع شید. بر برو تیره شد فرهی فر زدید به کجری گرایید و نابخوری پدید آمد از هر سوی خسرمی یکی نامجوی زرپهنوی سپه کرده و جنگ را ساخته دل از مهر جمشید پرداخته یک کاگک از ایران برامد سپاه سوی تازیان برگرفتن شنودند کنجا یکی مهتر است بر از حول شاه اجدها پیکر است سواران ایران همه شاه جوی نخوادند یک سر به زهاج روی به شاهی او آفرین خواندند ورا شاه ایران زمین خواندند که یه فش بیامد به ایران زمین تاج بر سر از ایران و از تازیان لشگری گزین کرد گردان هر کشوری سوی تخت جمشید بنهاد روی چو انگشتری کرد گیتی بروی چو جمشید را بخت شد کند رو به تنگ آوریدش جهاندارن و برفت و به دود تخت و کلاه بزرگی و دهیم و گنج و نهان گشت و گیتی برو شد سیاه سپرده به زحاک تخت و کلاه جمشید از ایران گریخته است ایرانیان پریشان و درمانده و توهی از تصمیم و اراده خود را به زحاک سپن جمشید در سرزمین های بیگانه درد آوار ایرانیز تجربه می کند مثل انجام به پایان سرنوشته برطنگیزه خیش میرسد لسند چو سالشان در جهان کس ندید زه چشم همه مردمان ناپدید صدوم سال روزی به دریای چین پدید آمدن شاه ناپاک دین. چوزه ها که ناگه به چنگ یکایک ندادش زمانی درنگ به مرو مرورا به دونیم کرد جهان را از او پاک و بیبیم کرد نهان بود چند از دمیشده نیامد نه به فرجام هم زوره ها شاهی و است که. شدن تخت شاهی آنده هست زمان ربودش چو بی جاد از او بیش بر تخت شاهی که بود از اون رنج بردن چه آمدش سود گذشته برو سالیان هفت صد پدید آوریدش بسیمی کبند چه باید همین زندگاه چه باید همی زندگانی دراز که گیتی نخواهد گشادند راز همی پرورانت با شهد و نوش آواز نرمت نیاید به گوش یکایک چگویی که گسترد مه نخواهد نمودن به بد نیز چه همه شاد باشی و شادی به همه راز دل برگشادی بدوی یکی بازی برون آورد به دلتندر از درد خون آورد چنین است چنین است کیهان ناپایدار تو در به بهجز تخم نیکی مکار دلم سیر شد دلم سیر شد زین سرای پنج خدایا مرازو برخان دریغا عظمتی که ویران شد دریغا یندهی کرگز شکل نگرفت دریغا میراث کیومرس و اوشنگ دریغا آفتاب عظمت ایران که به باد افراه گناه بزرگ جمشید غروبی دهشت زا کرد. پیرگی ناشی از زمامداری زهاک همچون شبیه هولناک و دیرپا به مدت یک هزار سال در ایران دوام آورد چو زحاک بر تخت شد شهریار برو سالیان انجمن شد هزار سراسر زمانه بدو گشت باز بر آمد بر این روزگاری دراز نهان گشت آین فرزانگان پراکنده شد کام دیوانگان هنر خار شد جادوی عرجمند نهان راستی آشکارا گزند شده بربدی دست دیوان دراز. زنیکی نبودی سخن جز پراز. زحاک بر عریقه پادشاهی ایران تکیه زد. بر تخت پادشاه ایران و در کاخ او جا گرفت. و شهر ناز و ارنواز دختران جمشید را به چنگ آورد. دو پاکیز از خانه جمشید برون آوریدند لرزان چو بید که جمشید را هر دو دختر بودند سر بانوان را چو اختر بودند ز پوشیده رویان یکی شهرناز ناز دگر ماه رویی به نامر نواز بیوان زحاک بردندشان بدان اجده فش سپردندشان بپروردشان از ره بدخوی بیاموخت موخت چان و جادویی بدین بود بنیاد زه هاکشون جهان شد مرو را چو یک مهرمون ندانست خود جز بدا جز از کشتن و قارت و سوختن چنان بود که هر شب دو مرد جوان چه کهتر چه از تخمه پهلوان خورشگر ببردی بیوان شاه و زو ساختی راه درمان شاه بهكشتی و مغزش برون آختی مران ها را خورش ساختی در این دو ایرانی به نام ارماگل و کرماگل چاری جلوگیری از ریختن خونهای بیشتری را در این پیدا کردند که خود را به آشپزخانه زهاک برسانند و از هر دو جوانی که روز دستگیر و کشته میشدند یکی را پنهانی آزاد کرده به کوخا روانه می و به جای مقصو مقص گوسفند خوراک مارهای دوش زهاک می آری، تیرگی و تباهی و درد ادامه داشت زهاک و مارهای کتفهایش در ریختن و خوردن خون ایرانیان سیری ناپذیر می نمودن و سال از دوران حکومت شیطانی زهاک می گذشت. از روزگارش چهل سال ماند نگر تا به بخش یزدان چرهاند در ایوان شاهی شبی دیر باز به خواب اندرون بود با هر نواز چنان دید که از شاخ شاهنشهان سه جنگی پدید آمدی ناگهان دو محتر یکی کهتر در میان به بالای سرو به چهره کیان کمر بستن و رفتن شاهوار به چنگندرون گرزه گاوسار. دمان پیش زحاک رفتی به جنگ زدی بر سرش گرزه گاف یکایک همان گرد که در سال ز زر تا به پایش کشیدی دوال به زهد و دستش ببستید چو سنگ نهادی به گردنش پال هنگ. بدین به خاری و زاری و گرم و درد بر تارکش خاک و گرد همی تاختی تا دماوند کوه کشان و دوان از در گروه یکی چاخ بودند آن کوه پست به درون برق دو دستش ببست <تصفيق> بپیچید زهاک بیداد کرد به در ریدش از بیم گفتی جگر یکی بانگ برزد به خوابندون که لرزان شدن خانه ستون هستند خورشید رویان سجای از آن قلقل نام برکت خدای چنین گفت زهاق را ارنواز که چه بودت بگویی براز تو خفته به آرام در خان خیش چه دیدی بگو تا چه آمد پیش جهانی سراسر به فرمان توست داد و دید